ایمان داشت که هر کس در این دنیا یا شفته چه در ایران چه در اروپا باید مراقب کار و آتیه خودش باشد هیچ کس به فکر دیگری نیست و هر کس دقیقی منافع و امراض خود را بخواهد به اسم منافع عمومی زیر پا بگذارد ابله هست و قتلش واجب در این حال ازش کار برمی آمد وقتی احساس می کرد که رضاشاه به چیزی علاقمند است دیگر حساب و سود و زیان آن را نمیکرد. از روی نش احمال کاران می گذشت و مثل یک ریگ از جیب خودش پول خرج می کرد تا میل و خواهش شاه را برآورد. یک شاه برای روز سوم اسفند یک اسب خوب خواسته بود. یک نفر از صاحب منصبان سوار سه ماه در اروپا گردید و نتوانست اسبی را که مطابق میل شاه بود به قیمتی که به نظرش مناسب میامد پیدا کند گزارش به دست سرهنگ افتاد حاکی از اینکه که شاه سخت براشفت و به صاحب منصب سوار و بیارزگی او حتاکی کرده است در از یک هفته با به مجارستان رفت و اسبی که متعلق به هرتوکس فن کاش بود به قیمتی که به درجات گرانتر از ارزش واقعی آن بود خرید و به تهران فرستاد. مخارج که از این بابت به صاب شاه گذاشت نصف مخارج اصلی نبود طبیعی است که به سر آن صاحب منصب ای که سه ماه در اروپا پرسه زد و نتوانسته بود اصل محره پسند شاه را به قیمتی که قابل قبول اللہ حضرت همایونی باشد بخرد چه آمد و این صاحب منصب این بود که در گزارش خود به ستاد از بلخجی های سرهنگ شمعی نقد کرده بود به همین طریق توانسته بود که مینان و احترام شاه را به خود جلب کند در این حال از او می‌ترسید و چون کسی که ممکن بود روزی او را از هستی ساقط کند شاه بود کینه عجیب از او در دل داشت اما در برابر ابراز این مطلب حتی به من هم که محرم احسارش بودم احتیاط را رعایت میکرد. نه اینکه باکی داشت و میخواست تنافر خود را از او پنهان کند. در ابراز انزجار کوتاهی نمیکرد. اما با آن رنگ وطن میداد. میگفت خشونت شاه در بحران کونی جهانی به ضرر مملکت تمام میشود. وتم پاراز کسی است که قبل از سقوط این رژیم به او لطمه وارد کند مکرر به من که محرم و مورد اطمینان او بودم میگفت روزی چنان صدمه ای به او بزنم که خودش هم حز کند عقلا طوری میکنم که دیگر نتواند به من آزاری برساند خوب یادم میآید وقتی روزنامه ای را که خداداد به من داده بود نشانش دادم نگاهی کرد آن را خاند و خندید و گفت با این بچه بازی ها خواهید با این مرد در بیفتید او یک فوت بکند همه شما را آب میبرد اگر از کسی کاری بر بیاید آن من هستم نه بچه من ها. در عین خشونت و یک دندگی که به سرنوشت اشخاص هنگامی که پای منافع و او به میان می ابراز می داشت باز هم با گذشت بود خودش را به اندازه یک سرگردن از همه رقیبان دیگرش بزرگتر میدانست و وقتی یکی از آنها توطهی به زیان اومی چید و یقین داشت که موفقیتی ندارد می‌بخشیدش. بخشیدش. بی می و صاف و پوسکنده سعایتش را کف دستش میگذاشت. وابسته نظامی ایران در پاریس به شاه گذاشت داده بود که سرهنگ آرام، با ایرانیان آشوبگر مقیم برلین سر و سر دارد این گزارش چندان هم پایه نبود یکی دو بار در ضمن مسافرت به برن برای خرید مهمات و اسلحه و کارخانه های نیاز ارتش زرتش ای از ایرانیان که هسته یک نسلت انقلابی را در برلین بمویان گذاری می کردند آشنا شده بود از آنها خوشش می آمد و هر وقت سرکله آنها به مناسبت کنگره ای از دانشجویان در پاریس پیدا می شد اهمان نداشت از اینکه با آنها گرم بگیرد می گفت بقیه آنها کاری ندارم اما بالاخره حرف حسابی سرشان می شود و مثل گوسند علف چرانی نمی کنند جرأت دارند و همین مزیت آنها بر دیگران است حیف که کاری ساخته نیست اینها اگر جرأت و شهامت و پول و ثروت و سابقه خانوادگی مرا به حساب بیاورند کارشان خواهد گرفت شاه گزارش را به داره تفتیش کل فرستاده بود و از او در این خصوص توضیح خواستند. سرهنگ مرد باهوشی بود. میدانست که وقتی این گزارش از دفتر مخصوص به ستاد تفتیش کل می رود، معلوم می شود که شاه برای آن ارزشی قائل نشده است. جوابی تیه کرد و فرستاد و غضیه از بین رفت. چند روز بعد این حادثه موقعی که با او از پله های ایران بالا می رفتم، به وابسته نظامی برخوردیم که یک درجه از آرام ارشدتر بود. تعلیم کوچکی در دست سرهنگ بود. حتی موقعی که لباس شخصی می پوشید با این تعلیمی بازی می کرد. زد روی شانه وابسته نظامی و بشوخی گفت سرهنگ با بزرگتر از خود چرا در می افتی؟ وابسته نظامی گفت جسارتی خدمت جناب سرهنگ نکردم. آرام گفت از همین یک دفعه درس بگیر و پشیمان شد. گفت و رد شد. با بسته نظامی با درجه تمام سرهنگی به او راه داد و رفت و نایب سرهنگ آرام هیچ قدمی به ذره رقیب خود بر نداشت در صورتی که ازش بر میامد و میتوانست بیاندازد و خردش کند. نتیجه این شد که پس از یکی دو هفته سرهنگ آرام، را به تهران احزار کردند و وقتی برگشت به سمت آجودان مخصوص الله عزیزت هومانیونی در تمام اروپا با درجه سرهنگی و شش ماه ارشدیت معمول خرید از هم به او واگذار شد و او مایه ثروت هنگفت خود را از این راه به دست دابند. به همین جهت همه از او حساب می بردند و حتی سفیر ایران هم به خوبی میدانست که سرهنگ آرام از آن ناتو هاست و باید باهاش سخت سرهنگارام از همان زمان خواستگارهای پاگرس من بود منطقه نقش اشاق دل را بازی نمی‌کرد. اساساً راجع راجب زن و, و عشق نظر مخصوص به خود را داشت او می گفت آدم باید زنی داشته باشد که با او زندگی کند در خانه همه کارش باشد برایش احترام قائل باشد بتواند با او تاترو کنسرت و, و مسافرت برود. چنین زنی باید بتواند پیش دو نفر آدم حسابی خودش را نشان بدهد. در مهمانی های رسمی همراه و همشن او باشد. گاهی از یک زن فهمیده کارهای دشواری با آسانی ساخته است که از عهده هیچ مرد فهمیده و استخانداری بر نمی آید. اما چنین زنی برای زندگی کافی نیست، در عین حال عشقبازی هم جزء ضرور زیاد هستی است. عشق فقط توی کتاب ها برای ابلهان است. منتها آدم نمیتواند با اینکه خودش میگذرند زندگی هم بکند. یکی باید در خانه باشد از بچه ها مراقبت کند. مهمانان را به و تمام امور خانه را در ید قدرت خود اداره کند و مرد مجاز است، هرچند وقت یک بار زنی که فنون دلبری را در مکتب اجتماع آموخته باشد شیره زندگی را بچشد.